اله الطيبين القاهرين المعصومين وبعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة السلام عليك يا ابو عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك منا سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل النهار السلام و علی الحسن و یا و رحمت الله و برکات او صلوات محمد. محمد. محمد. محمد. محمد. خداوند مهربان را سپاسگزاریم که برای همگانمان توفیق عنایت فرمود تا امروز را هم در یکی از مجالس برای ارز ارادت بساحت مقدس خاندان ایمه هدا علیه مصالات و سلام مخصوصا سید و سالار شهدا حضرت آقا عبا عبدالله الحسین علیه و سلام همگه توفیق بیا بیا بیابیم و در خیمه اعضای حضرت شرکت کنیم خداوند ربان به توفیقات همگی ما و شما بیفزاید و ای اراده ارادتها را از ما و شما قبول بفرماید به حرمت صلوات بر محمد و آل محمد دیروز و در جلسه قبلی ما و شما با مفاهمه در مورد موضوع بحث مهم این سالخش آشنایی پیدا کردیم که یکی از این واجه ها طلبه بود در جامعه افغانستان برای طلبه کلمات و واجه های دیگری را هم استفاده می و البته در همه جا چون این چیزی هست طلبه گاه برای فرد که تازه وارده درس خواهی حوزوی و علوم اسلامی شده است گفته می شود و گاه برای آلمان دینی هم طلبه گفته می شوند. یعنی افرادی که یک مقداری تحصیل کردند و به تحصیلاتشان ادامه میدهند در عین حال وظیفه مقدس روحانیت و عالم دینی رو هم انجام می گاهن به اینها هم طلبه گفته می شود و طلبه استعمال می کنن. چون براسته اینها طالب علم هستند ما در اسلام هم داریم می فرماید شما از گهوارت تا گور دانش بجویید بر این اساس همه علمای دینی تا آخرین دم حیاتشان هم به علم آموزی ادامه می دهند نقل شده است رفتن به بالین و کنار بیماری که اون بیمار تقریبا داشت و حالت احتضار بود در همه هنگامه مرگ از کسانی که در کنارش آمده بود مسئله علمی داشت مطرح میکرد بقیه گفتن شما در این وضعیت چی میکنین مسئله علمی رو میپرسین و صحبت میکنین بعد اون شخص جواب منطقی گفت گفت که اگر دانسته بمیرم بهتر از آن است که نادانسته بمیرم بر این اساس علم آموزی تا آخرین دم برای همگان هست به عنوان یک تکلیف و یک وظیفه و علمای اسلامی هم این مسیر را ادامه داده است و اگر در حوزات علمیه برویم نظر بیاندازیم میبینیم تعداد از پیرمردان را که کتاب در دستش هست و می روند به پای جلسه درسی می نشینند این همون ترغیب و تشویق اسلام برای علم آموزی است این طلبه برای علماء اسلام هم گفته می شه. اما در جامعه افغانی ما و شما و در جامعه خراسان بزرگ از واجه های ملا مولوی در بین اهل سنت آخوند و عالم هم برای دانشمند دینی استفاده می کنند و به کار میبرند. ولی واژه عالم دینی برای همه اقشار جامعه کشور ما و شما معروف و مشهور هست در عالم واقع همه این واجه ها برای یک تیفی از مردم یک گروه خاصی از مردم کار می روند که اون گروه خاص عبارت از همه افرادی است که مصداق وارسان انبیا هستند. چون علمای اسلامی بر اساس نصوص و روایات که ما شما داریم باید وارسان انبیا باشند این روایت خیلی معروف هست او و رثت الانبیا آلمان دینی وارسان هستند. بنابر بنابراین و بر این اساس کسانی که میتوانند توفیق وارث شدن برای انبیا را در خودش ایجاد کنند اینها همان طالبان علم اسلامی هستند واجه واجههای دیگر چون طلبه، ملا، آخوند و عالم دینی هستند در اینجا یک مقدار بحث بیشتر لازم است چرا واجه طلبه انتخاب شده یا چرا تأکید میکنیم بر این که باید عالم دینی بیاید در اینجا نقش بازی کند عنوان ما و شما هست بانوان طلبه کابل و جامعه سازی آشرایی چرا ما یک واجه را استفاده نکنیم که همگان را در نظر بگیرد با آن که به معروف و نحی از کرد برای همه مسلمانان واجب است چه طلبه باشد چه غیر طلبه باشد چه دانشجو باشد چه محصل باشد چه در مدرسه باشد چه در قرآن باشد و هر سطح تحصیلی که باشد به هم که و همه اندازه ای که توانایی دارد امر به معروف و نهی از منکر بر همگان واجب است چرا در این عنوان یک واژه خاصه که بیانگر یک تیف خاص یک هویت سینفی خاص هست استفاده میشه چون در اینجا نکته وجود دارد نکته شان این است که برای علمای اسلام یک هویت سینفی خاص است و او هویت سینفی خاص همون چیز است که در زبان روایات به انوان وارث مطرح است در زبان روایات الولما و الانبیا گفته شده است حالا این علما کیست؟ است اون چه که بین جامعه اسلامی معروف هست علما کسانی است که عالمان دین هست بقیه هم علم دارن یعنی آگاهی دارند دانش دارند تخصص دارند اما بدون شک تخصص پیامبران تخصص زبانشناسی تخصص مکان شناسی و تخصص ستاره شناسی و همسالو هم نیست بلکه کار پیامبران کار هدایت است کار جهت هیست و هویت سنفی طلاب این است هویت یک بانوی طلبه هم چنین چیزی می شود بانوی می تواند وارث انبیا قرار بگیرد که خط رسالت پیامبران را ادامه دهد ده و خط هدایتگری ایمه خدا را ادامه دهد ما در اون جمله معروف از آقا امام زمان قجل الله تعالی فرجه و شریف داریم این هم حجت علیکم و انا حجت الله عالمان دین و فقه ها حجت من امام زمان علیه السلام بر شماست و من حجت خدا هستم. و توقی شریف در اینجا وارد هست در اونجا حتی ویژگیهایی از این دسته و این تایف از مردم را ذکر میکند که کسی که میخواهد در این وادی وارد بشه و در این طیف وارد بشه باید چه خصوصیات را داشته باشد. در همینجا فقط اشاره کنیم و یاد کنیم. مجال برای یادآوری همه نکات شاید این مجلس ها ظرفیتش رو پیدا نکند و اون این که خوب است در این مورد ویژگیهایی هایی که یک مبلغ دینی باید دارا باشد اون را باید مطالعه کرد و در وجود یک طلبه چه مرد ما چه زن ما باید ایجاد بشود تا در امر وظیفه و رسالت و هدایتگری که از انبیا و ایرس بردهاند موفق بشوند این چونین هست مسئله هویت سینفی طلاب یا مسئله هدایتگری و ادامه دهنده خط رسالت برای علمای اسلامی دانشمندان اسلامی اعمی از زن و مرد و مخصند در بحث فعلی ما که بحث بانوان طلبه هست از زمان حضرت ابراهیم خلیل عل علیه و علا نبینا و علیه السلام شروع شد و تا زمان حضرت پیانبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه و, علی و, علی و علیه و خدا علیه و و سلام و تا زمان کنون و تا آخر الزمان ادامه پیدا می کند و از یک جهت می توان مسئله وجود روحانیت رو در آغازین اسلام دید. پیدایش روحانیت همزمان با پیدایش اسلام تقریبا شروع شده است. در زمانی که مسلمانان داشت به جهاد میرفت نسبت به ایده از مسلمانان دیگر اعتراض کردند که چرا اینها فقط آمده مشغول تحصیل علم هستند؟ چرا نمی روان جهاد کنند مستقیما آیه نازل شد آیه قرآن معروف هست به آیه نفر در اون آیه تصریح میکنند نباید همه مردم به جهاد بپردازند بلکه یک ایده از مردم باید از مناطقشان کوچ کنند و بروند بی علم بیاموزند بعد از اینکه علم آموختن برگردن به مناطقشان تا مردم را انذار کنند و مردم را آگاه نمایند مستقیما آیه نازل شده این آیه معروف است به آیه نفر الفقهاء و رسول الرسول در هویت سینفی دیگه‌ای که راجع به طلاب و علمای دینی و دانشمند دینی مطرح است امین بودن هست باید علما و دانشمندان دینی امین باشند از این جهت است که همگان این خصوصیت در وجودش نیست یک نفر که جیالوجی بلد است هیچ لازم ای نیست اینکه در قسمت اه، اه، کار سینفی پیامبران وارد بشود هیچ کس رسالتش را هم نمیپندارد. او موظف نیست که از انبیا امانت داری کند ولی الفقه ها او رسول یا او رسول فقیهان امینان رسول هست بنابراین طلبه کسیست که دارای این چونین های باشد طلبه باید ضمن اینکه عالمی به زمانش هست صفت عدالت هم در وجودش باشد اینا ویژگه که کسانی که از بانوان میخواهند برای جامعه اصازی آشرایی قدم بردارند اینها را در وجودش ایجاد کند و ایلا اولین که موفق نمیشود دومین که فقط به اندازه که میتوانند وارد بشوند و زیاد زیاد نباید هم وارد بشود حالا دلایلش رو هم عرض خواهیم کرد که چرا نباید وارد بشود و اون این که در اینجا خوب است عنوان بحث را اینگونه عوض کنیم بگیم که چی ضرور هست که باید طلبگی در جامعه اسلامی در کنار دانشجویی علوم انسانی و علوم روز باشد چی ضرورت دارد که یک ایده مردم فقط وظیفهش طلبگی باشد یک عده مردم فقط دانشمند دینی باشد در جامعه اسلامی ما افغانستان مقصا در همه چند مدت قبل ما و شما مشاهده می کردیم یک عده از دانشمندنماها میآمد می آمد ذهنهای مسلمانان رو به تشویش میانداخت انداخت مسلمانان رو مورد مسخره خش قرار میداد داد و دستمال و به حجاب اینها تمسخور میکرد به های آلمانه و حکیمانه تمسخور میزد شبهات زیادی را وارد میکرد پایه های اعتقادی مردم را سوست میکرد مردم را به لاعبالگری تشویق میکردند، اینجاست که در جامعه دینی ما ما دوچار مشکلات این چونینی شده بودیم و از این به بعد هم ممکن است دوچاره چون شبهات که الان هم هستیم و چونش کار کرد. باشیم و بدون شک خواهیم بود چون زمان دوچاره تحول هست و این چونش می شود. لذا یک دانشمند دینی می تلابد یعنی لازم و ضروری است که هویت سنفی در وجود این شخص باشد. یعنی عدالت باشد صداقت باشد عالم به زمان باشد تا بتواند جوابگو و چنین مسائل باشد وقت ما هویت سینفی علما و دانشمندان دینی را خوب متوجه شدیم اگر یکی از ویژگیهای های عالم دینی دلسوزی به مردم هست بنابراین اگر کسی عالم دین باشد ولی به با مردم دلسوز نباشد این نفر اون عالمی واقعی دینی نیست بلکه عالم نماز روحانی واقعی نیست بلکه روحانی نماست اگر ویژگی یا هویت سنفی دیگه علما و طلاب چه خواهر چه برادر و هر کسی باشد عالمی به زمان هست اگر یک عالمی به زمانش آگاهی نداشته باشد معنیش این است که این نفر در وظیفه خودش موفق نمی شود چرا؟ چون ما مسئله عالم به زمان را رو در روایات هم داریم اینطوری نیست که یک نفر فقط در کنج یک از حوزه های علمیه بینشیند یا فقط در یک کنج از گوشه و کنار دنیا بینشیند و از هیچ جای خبر نباشد جز همه مسائل اسلامی که میداند این نیست عالم باید عالم بر زمان باشد تا بی تواند نیازهای زمان را پاسخ بگوید طلبه چه خواهر باشد چه برادر باشد باید بی تواند به نیازمنده های زمان و به مقتضیات زمان پاسخگو باشد برای این اساس است کن این بحث که ما و شما امسال دنبال میکنیم بانوان طلبه و جامعه ساز آشرای چقدر مهم جلوه میکند در زمان فعلی زمان قدیم نیست که فقط رسالت یک طلبه توسط سخنرانی انجام بشود فعلا زمان عوض شده است یک طلبه یک عالم دین یک بانوی طلبه علاوه این که باید صحبت بسیار عالی و قابل فهم برای همگان داشته باشد علاوه آن از ویژگی ها و از امکاناتی امروز دنیا هم استفاده کنند در این باب تا در مسئله جامعه سازیشان موفق شود. اینا از ویژگی است که برای یک طلبه لازم هست و اگر کسی عالمی و زمان باشد ولی حویت سنفی نداشته باشد یعنی امانت داری نداشته باشد یعنی دلسوزی نداشته باشد یعنی وظیفهش و رسالتش را حفظ دین نداند غصه این مسائل نمی شود بنابراین رسالت مداری علمای دینی چی طلبه دختر باشد چی پسر باشد رسالت مداری خودش می طلبد که باید یک گروه وظیفه اش را طلبگی قرار بدهد. و این گروه این توفیق را در وجود خودش ایجاد کند که از جمله وارثان انبیا و اولیاء قرار بشه چرا؟ چون وظیفه یک عالم دین یک وارث انبیا رسالت مداریش هست رسالتش چیست حفظ دین از تهاجمات و از شبهات وقتی راجع به مسئله دینی شبهه وارد میشه این عالم دین است که باید این شبهه رو برطرف کند نه یک آدم ستاره شناس نه یک آدم پیزیش نه یک آدم خیاط نه آدم که یک تخصیص دیگه ای داره عالم دین باید شو به را پاسخ بگه چرا؟ چون اینها وارثان انبیازن یا وقت دین مورد تهاجم قرار میگیرد عالم دین هست که باید مردم را از این حجمه ها نجات بدهد در کشور ما کم تا حاجم فرهنگی صورت گرفته است خیلی عالمان دین هست که هم وظیفه این کار را دارد و هم این کار را باید بیکند و میتواند غیر عالم دینی این کار را نمیتواند دومین ای که ضرورت عالمان دینی را برای ما نشان می‌دهد مساله گوستریش معنویات است قرآن کریم می‌فرماید هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه این آیه خیلی در خور دقت هست خوب دقت کنیم خداوند متعال در بین کسانی که درس ناخوانده هستند یک رسول را از بینشان برانگیخت مبعوث فرمود تا چی یتلو علیهم آیاته آیات و نشانههای خدا را در بین اون مردم تلاوت کند دقت میکنین این آیات اگر آیات قرآن هم باشد کی تلاوت میکند یک آدم داکتر تلاوت میکند او وظیفه شه تلاوت قرآن نیست تلاوت قرآن وظیفه قاریان قرآن و وظیفه طلبه های دینیست آلمان دینیست یکلو علیه هم تا که به همون مردم آیات خدا را تلاوت کنه. این آیات اگر آیات قرآن باشد وظیفه قاریان و وظیفه علمای دینیست ولی اگر آیات را به معنی لغویش بگیریم آیات جمع، آیه هست آیه به معنی نشانه است. یعنی نشانه های خدا را در بین مردم باید به معرفی برگیرد نشانه های خدا خیلی فراوان هست وقتی ما به هر طرف نظر بیاندازیم نشانه از نشانه های الهی را می توانیم ببینیم ولی باید زمین سازی بیشود که این با چشم بسیرت ما و شما میتواند درک کند و ببیند. بی با این چشم ظاهری محسوسات را بی و از محسوسات به حقیقت مسائل باید پی ببریم. وقت وقتی مسئله بهار و زمستان می شود در این نشانه و آیه هست و مسائل دیگه که می شود در آن نشانه و آیه هست و مردم را هر از گاه هشدار می دهند و وعظ می کنند و نصیحت می کنند تا اینکه مردم سر از پایشان رو گم نکنند دستشان رو گم نکنند پایشان رو گم نکنند و در هر سمت و سوی روان نشود ولی کسی که هیچ حکمت در وجودش نهفته نشده است هیچ آیه در وجودش مورد دقت قرار نگرفته زمانی که خوشی بود به قدر خوش میشد، دیوانوار مستی میکند، کند می خندد به تعبیر ما و شما بازی می کند رقص میکند. کند ولی وقتی که در ازا هم گرفتار شد به قدر می گرید و داد و ناله سر می دهد که قش می کند این گونه نیست یک آدمی که واقعا متدین هست در خوشی ها آنچنان خوش نمیشوند که همه چیز را فدای خوشی کند در ازاها در مرگهای از والدین گرفته تا فرزند و آل و ایال هم آنچنان رنگی نمی شوند. ما شما در همه افغانستان خش از آلمانی داشتیم که پیسرش فوت شد سرش را بردن دفن کردند، آمدن سر کلاس درس نشست بقیه آمدن که فاتحه بخوانند، دیدن که رفته با سر کلاس درس نشست این معنیش چیست؟ معنیش بیتوجهی به فرزندش است نه بیتوجهی نیست معنیش ظرفیت را میرساند معنیش رسالت را میرساند معنیش این است که علم آموزی و درس و تحصیل در جامعه مهمتر از مرگ فرزند هست در همه افغانستان خیش چون این فرد را داشتیم این گونه هست یتلو علیهم آیاته تا آیات خداوند را بر مردم تلاوت کند ادامه و ویوزکیهیم و مردم را تسکیه کند مردم را پاک و پاکزه کند مردم را از کدورت ها مردم را از کارکرت های شیطان بیره هاند. وقتی مردم چشمانشان آلوده میشه قلبشان آلوده میشه زبانشان آلوده میشه گوشهایشان با شنیدن هر صدای آلوده میشه دستشان هر جایی میره پایشان هر جایی میره این آلمان دینی هست که باید اینها را تذکیه کند باید پاک و پاک زرگردانه ما در مورد گریه کردن راجع با امام حسین علیه داریم فعلا مثل الحسینی فلیب کلبا کن پس بر همچون امام حسین السلام کسانی که گریه کنند بگریه چرا؟ چون که گریه بر امام حسین علیه السلام گناهان بزرگ را از بین میبرد. کی روز میخواند؟ قاریان قرآن روز میخواند؟ کی روز میخواند؟ مذاهان اهل البيت علي علیه السلام روز میخواند؟ کی روز میخواند؟ که می مردم گریه کنند آلمان دین و طلاب خواهر و برادر روز میخواند؟ این چنین هست. ما در روایت داریم میگه کسی که ذکر مصیبت از مصیبت ائمه علیهم و سلام را یاد آوری کند بعد بگرید یا این که دیگران را هم به گریه وادار کند در روز قیامت این چشم گریان نمیشه اینها ها همیشون همو تذکیه هست همو پاک شدن هست و پاک کردن هست و این رسالت بانوان طلبه هست و این رسالت قاریان قرآن و علمای دینیست و یعلم همو کتاب و مردم را کتاب خدا را آموزش دهد قرآن خدا را آموزش دهد و ها را آموزش دهد در کل عمر ما و شما ما کی را به نام حکیم میشناسیم لقمان لقمان کیست؟ کسی که وارد همی تایف هست لقمان آدم خیاط نیست آدم نانوان نیست آدم پزشک نیست آدم متربان نیست آدم از متخصصان دیگه نیست لقمان کسیست که در این خط وارده کدام خط خط طلبگی به تبیر موشون خط که انبیا درش هست اینجا حکمت وجود دارد حکمت است که مردم را از بلاها نجات میدهد خود شخص هم نجات پیدا میکنه این اینچونین هست بنابراین باید عده از مردم اینچنین باشد سومین ای که برای ضرورت وجود طلبه لازم هست معرفی اسلام واقعی هست فقط عالمان دین توانند اسلام واقعی را معرفی کنند چرا چون اینها متخصص در این زمینه هست بقیه که تخصص ندارد درست است که پزشکی واجب هست درست است خیاتی واجب هست اما واجب عینی نیست اگر یک دانه خیات باشه که جامعه همه جامعه را بیتواند کفایت کند از گردن همه ساقیب میشه اگر یک دانه نباشه سر همگان واجبه که یکیش باید خیاط بیشه پیزشکی واجب است، اما وقتی یک پیزشک بود کفایت میکند و بقیه مسائل هم همین است. چرا؟ چون اونها متخصص میشه در اون با. در مسائل دینی و اسلامی هم همین است. که میتواند اسلام واقعی را معرفی کند آلمانی دین و دانشمندان دین میتوانند چنین کاری کار کنند. بنابراین نباید غیر دانشمندان دینی وارد این مسئله بشه. امروزه برای اینکه مردم را از علمای دینی دیر کنن، دور کنن چند تا مسئله آمدن مطرح کردن در جامعه ایران در افغانستان ما و شما هم همین طور است کشورهای دیگه هم همین است این مسائل رو در ذهن داشته باشین مهم هست اولین مسئلهی که برای دور کردن مردم از علما آمدن دشمنان استفاده کردن ثبت اصنات هست یک نفر حتی برای اینکه که اما عقد ازدواد این در جامعه وین مورد رسمیت پیدا کند باید دولت را تأیید کند این چه رفته به دولت دارد؟ مگر مسئله خانواده و ازدواج دولتی است؟ نیست اما آمدن این را وارد کردن برای اینکه که مردم را از روحانیون دور کند از علما دور کند سند شرعی که یک عالم دینی می نویسد و تعیید می کند در روز حتی روز قیامت کفایت کننده است این چه رفته دارد که باید دولت تأیید کند؟ دو مردم در زمان سابق صبح و شام می آمدن مسجد خاطر که از جامعه و از اوضا اطلاع پیدا کنند نمازهای جمعه بود و هم, هم بود آمدن چه کار کردند؟ گفتند باید هی رسانه ایجاد کنیم، تلویزون ایجاد کردن، رادیو ایجاد کردن، روزنامه ایجاد کردن. برای اینکه دیگه مردم بگن دارم مسجد رفتن لازم نیست. فتوا یک علم و دانشمند شنیدن لازم نیست. از رادیو تلویزون نیست. اینها برای این است که مردم را رو از روحانیون دور کنن، از متخصصان دینی دور کنن. و از وارثان انبیا دور کنند بعد در کنار و در لابلای بحث‌های رسانه‌ای تبلیغات می‌کنند تبلیغاتی که همه تهاجم هست همه به وارد می این اینچونی سومین مسئله‌ای که باز هم مهم هست احکام الهی هست برای اینکه مردم را از علما دور کنند آمدن علم حقوق را هنده ده با مردم گفتند دیگه لازم نیست شما وقتی زمین خریدید یا یک مسئله شرعی پیش آمد پیش عالم دینی خود بروید برین در حکومت سراها بحثای حقوقی طبق قانون عمل کنید یک کشور باید قانون داشته باشد احکام شرعی بود بود نبود نبود اینها همیشون برای این است که مردم را از روحانیت دور کنید این در حالی است که قانون اعتباری ندارد. قانون در پیشگاه خدا اعتباری ندارد. قانون قانون الهی است و احکام الهی است. این چونین است. اینا وظایف عالمان دینی و متخصصان دینی است. پس بنابراین تا زمانی که عالم دینی نشدیم یا زمانی که یک عالم دینی نبود نمیشود کل اسلام را از غیر عالم و متخصص دینی گرفت کسی که تخصص دیگه ای داره اگر راجع به اسلام حرف بزنه بد نیست ولی خوبم دست چرا؟ چون مردم را از متخصصان اصلی دور میکنه وقتی از متخصصان اصلی دور کردن کم کم اون چیزایی که واقعیت ندارد وارد می این گونه اینا مهم هست و بر همگان لازم است بنابراین بانوان طلبه کابل به عنوان رسالت مدار این بخش و این قسمت باید خوب توجه کنند و متوجه باشند که چه مسئله خطیر را دنبال میکنند و وظیفه گرفتند و چی باید بکنند هم عالم به زمان باشند و هم متخصص به اسلام باشند و هم دلسوز باشند و هم عادیل باشند از خداوند مهربان امیدواریم که برای ما و شما چنین توفیق را عنایت بفرماید و حرمت صدوات بر محمد و آل محمد, محمد, و محمد و عشل و عشل صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك منا سلام الله يا أبا ما بقيت ما بقينا وبقي الليل والنهار يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدائي حاجتنا یا وجیحان ایندا الله اشفاعنا واندا الله یا منینا ایندا الله اشفاعنا واندا سکارو بلام خون کار دل مارو، حدیث کارو بلام خون کار دل مارو، چی جای چی جای چار بدین. درد ب مدار و که چرخ برف را آتشی در شام که تیره کرد زدودش شراقبات ها را اف بر زمان و اف بر روزگار نانجیبانه در شام بلند شدن تمام هست بود بدها را باتش کشیدن حسین به مردن اکبر چگونه تن دواد نمیشنید مگر ناله های در جمع مان پسر مرده نباشد مرگ پسر واقعا سخت است مرگ جوان واقعا دشوار هست حسین به مردن اکبر چگونه تن در داد نمیشنید مگر نالهای های لیلا سر یزید و سر حسین بتنور فدا خدای سبر دهد زهن قضی و زهران در دل شب دیدن مطبخ و تنور خانه روشن است زن اونا نجیب آمد دید داخل تنور روشناییست طبق را رو برداشت دید اده از بانوان مجلله سر را دارد خاکستر رو برطرف می کند اما بانوی از دل ناله می کند صدا می زند عزیز مادر حسین غریب مادر حسین اللهم يا حامد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاقمان يا محسن بحق الحسان يا قديم الإحسن بحق الحسين اللهم بحق تسعة المعصومين من درية الحسين الهي, إلهي انش خير و صلاح من فرماي إلهي, الهي مارا در مسائل شرعي من آغاف قردان الهي, إلهي مارا الجملة علماء بدينة ب... وارفان به کامد قرار ده اله, اله حسن توفیق حسن اقبل عنایت فرمای اله این قلیل عرض ارادت ها از ما به قبول فرمای زخیره قبر و خیامت من بگردان اموات ام من غریق رحمت فرمای مریضان من شفاق عنایت فرمای مشکلات گرفتارها بیکارها برطرف فرمای امید. رزق و روزه واسه و حلال عنایت فرمای امید. براورده شدن حوائج مشروعی محتاجین ملتمسین دعا جمع سلامتی و تعجل فرج ما مغاصر علیه الصلاة والسلام بر محمد و محمد صلوات